بجهازهم قال أتوني بأخن لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيلة و خير المنزلين فلم لم تأتوني به فلا كيلة لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لا فاعلون بستشار من درس أز درسوية السورية يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف أمينه أوف الكيل بمانرا دقيق برأساس من بمحتاج نشميدا أمينه إن صداقتشك أورا بإن مكانتو إن جايقارة سنده و خیر خير المنزلين پیامبران الهی الگوهای ما هستند در اخلاقشون رفتارشون بهترین مهمان نوازان پیامبران الهی این صفت پیغمبرانه که مهمان نواز بودند از وقتشون میدادن از جانشون از مالشون مایه میذاشتن برای مهمانشون از اخلاقشون بالاتر از همه اون اخلاق نبوت در مهمانداری و مهماندوسی و مهمانپذیری و انا خیر المنزلين بهترینه بهترینه به خاطر همینه که توصیه الله به ما در قرآنی که از پیانبرانش درسایی که به ما میده ازشون الگو بگیریم این توصیه الهیه اینها الگوهای ما هستن بزرگترین درس و عبرت در زندگی باید از اینها گرفت اینهایی ای که اختیار و انتخاب شده الهی هن. الله اونها را انتخاب کرده برادرتون رو باید بیارید تا اینکه کافی و وافی بر اساس نیازتون بهتون بدم نه دیگه نزد من پیمانه نداری فعلا تاتونی بی فلکی لک ولا تقربون النازکه منشیت حرام حرام اجازه ندارم این قانون و ما ظلم در حق کسی نخواهیم کرد خب یوسف علیه السلام یک در از باب تهدید استفاده میکنه که درشت قضا هست برادرتون بیارید تمان چرا براتون نیوردید مشکلتون چیه خب بعد اون برادر بیاد یا شاید اصلا برادری ندارید. باید صدقتون رو ثابت بکنید. اما از یه طرفی پس تقاضاش اینه یوسف که باید برادرش ورده بشه. اگر برادرتون نیارید، حالا تهدید یک خاصه داره، وردن برادر و یک تهدید هم داره. نیارید، دیگه اون پیمانه‌ای که باید بهتون بدم از اون آذوقه دیگه در کار نیست. قالوا سنراود عنه ابا سنراود و مراوده می‌کنیم. یعنی با پدرمون چک و قانعش حالا با مگ هر چیزی که در توانمون باشه همون کاری که با یوسف کرده، مراوده کردن اومدن این کلمه مراوده چندین جا در این سوره تکرار شده یک مراوده زلیخا زن عزیز مصر با یوسف با اون آرایش و با اون زیبایی با مکر چون مجرد تقاضا نیست مجرد خواهش نیست بلکه همراه یک نیرنگ کاسه زیرین ایم کاسه هست اینجا هم همینطور بین خودشون خب حالا چگونه پدرمون رو متقاعد کنیم که بنیامینالا چنانچه اسمش اومده اچانک که اسمش در کتاب خودمون نیامده اسم برادر یوسف برادر تنیش البته شقیقش چگونه اون رو از پدرمون جدا بکنیم قالوا سنا راوید عنه ابا تلاشمون میکنه با ان لفاعلون میتونیم و میکنیم یک نقطه مثبت روحی روانی هست تربیت پدری درش رو تاثیر گذاشته نگید نمیتونم مادامی که الله با توست تو همیشه بگو من میتونم این چیزی که در شناسی بهمون میگن بگو من میتونم بعضی آهراماش اصلا میگن 17 بار تو تکرار کنم من میتونم میتونم حالا این چیزا حالا حالا خب توان رو در خود دیدن این مهمه که انسان اون توانی که قدرتی که الله درش گذاشته انسان در خودش ببینه تا بتونه انجام بده وقتی که آدم نالی بکنه من نمیتونم و من خستم آلا امتحان سنگین آلا ریاضی برام سخته اصلا برام قفله این فاز منفی رو باید از ذهن خودمون خارج بکنیم خصوصا بچه‌های ما با یاد می‌گیرند نمیتونم درس بخونم نمیتونم تحصیلاتم ادامه بدم اینها نمیشه یعنی این با این فاز منفی نمیشه زندگی کرد همیشه ما باید فازمون مثبت باشه همیشه باد با حسن ظن بریم راکنید فاز منفی یعنی صفت منافقین داشته این در قران اینطوریه یظنون این بالله غیر الحق ظن الجاهلیه ان ظنوا گمان جاهلیته همیشه گمانش بده نمیتونم نمیشه و الجاهلیه الله میگه یظنون بالله غیر الحق به ناحقه یعنی سوه زن داره الله از ما حسن زن سوه زن گناه. ما باید حسن زن داشته باشیم مؤمن باید همیشه گمانش با الله نیک باشه این کار خوب رو انجام میدم این کار نیک رو انجام میدم الله هم من را رهانه الله هم یار و یاورمه دستمون می گیره الله نجاتم میده. همیشه باید با خوشبینی رفت جلو نه با بدبینی همیشه با حسن زنده با الله و اعتماد به با الله باید رفت جلو این روحیه مثبت باید در ما باشه وگرنه ما یک شخص روانی می... کسانی که من پیش روانشناس کسانی هستن که از این فاز منفی نگری رنج میبرن. فاز منفی نگری نشستن در خونه حالا ما چرا مریض شدیم حالا دللتنگیم حالا کسی بهمون سر نمیزنه حالا بچه هم ازدواج کردن رفتن یا خود اون بچه اومده دوست ندارم همه بچه ها بدنن همه یا اخلاق خودشون دارن این انزوا این پسن الان این درد که الان جامعه امروز داره بچه هایی که تو خونه نشستن پای تبلت، پای کامپیوتر پای گیم والله خدا رحم بکنه اون نسل آینده ای که بخواد بیاد پدران اینا باشن پدر بازی گیم بکنه پدر افسرده باشه پدر روابط اجتماعی بلد نباشه پدر گذشت بلد نباشه چی بوده اصلا تعامل چی که دیگه گوزش داشته باشه نمیدونه اصلا نه دعوا کرده نه دویده جسم ضعیف نه و سخونی دستش بکشی از اون ور غظروفا پریدن بیرون جسم ضعیف، هزار تا مریضی داره، کلیش میناله، کبدش از یه طرف مشکل داره فکر نکنم کم باشه تو جمع خودمون، کسی مثلا مشکل کبد نداشته باشه چرا مشکل کبد دارن مردم امروز؟ حالا میگن نه گوشت، قرمز، فلانه، همش برمیگرده به کم تحرکی همش برمیگرده به عدم تحرک ما، حرکت ما، هر دکتری بخوای برید ما در مقابل جسم مسئولیم حقی داره بر ما اون سه شخصی که اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و آله یکیشون گفت که من شب بیداری می کنم برای تهجد یکیشون گفت من هر روز روزه می گیرم گفت من هم با همسرم هم خوابی نمی کنم رسول الله صلی الله علیه و آله ناراحت میشه خشوعی میشه که من میخوابم قسمتی از شب من روزه می گیرم و گای نمی گیرم می خورم. من با همسرم همبسری می کنم هم خوابی می کنم همسر دارم بعد تهدیدشو میکنه بدونید فمن راغب عن سنتي فليس مني غیر از این راه بگیرید از من نیستید بر منهج من نیستید فکر نکنید از امت من میشید با این کار بای هرسم برهبادت و طاعتم ولی حق جسمم میدم میرم تنت بر تو حق داره ای مؤمن همسرت بر تو حق داره ای مؤمن ان لنفسک علیک حق و لاهلک علیک حق هر کدوم حق و حقوقی دارن اینکه مرد بشینه کار نکنه زن و بچهش محتاج بشن این مذمومه شر بهش مخالفه شر از تو حرکت میخواد شما نگاه بکنید یوسف حرکتش برای اون بازرگانان یه طرف برای کشاورزان یه طرف برای دامداران یه طرف از هر طرفی داره می جنب برای که مردم قدر نعمت را بدونن برای اینکه بشه حرف الهی را به اونها برسونه مردون رو به حق دعوت بده کار تلاش از تو حرکت از الله برکات رسول الله صلواتشان برام مثال پرنده میزنه شما یاد بگیر از پرنده صبح میره تغذو خماصه و تروح بطانه صبح کی میره گرسنه است برای شب که برمیگرده از اون زحمتی کشیده میاد شکمش پر برای بچاش یاد بگیر از پرنده حالا بعضی از اهل تصوف بین صداال میگن که خب پرنده روزیشو الله رسونده خب روزیش حرکت کرده به طرف روزی که روزش اومده اینکه اون الله چی قسمتت بکنه اون دیگه الله مشخص میکنه آینده دست تو نیست تو باید حرکت کنی تلاشت بکنی بر اساس نیّتت و گزینش الهی که کجا تو را بذاره چه درآمدی داشته باشی اون دیگه الله تعیین میکنه بس حرکت مهمه مثبت اندیشی مهمه اعتماد و توکل بر الله مهمه توکل یعنی گرفتن اسباب و علال الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین توکل یعنی اعتماد به الله با گرفتن اسباب خب میگم ببینم پیامبر دعوت میداد پیامبر نمیدونم علیه الصلاه و السلام فلان کار میکرد رسول الله صلی الله علیه و السلام شما که خودتون رو خیاس میگیرید به اون جایگاه مالی برسید اول بعد بگید رسول الله صلی الله علیه و السلام از ده سالگی شروع کرده بود به تجارت کرده بود با پدر بزرگش به شام میره قافله میرفت بر مال داشت و ثروت داشت و خرید و فروش و معامله داشت اونجا که بحایره راهب او را میبینه میگه این نگاه بکنید هر جا میره عبری میاد بر روی سرش این آدم عادی نیست همه توجه داره نه این شخص ده سالشه را تجارت می‌رفتیم بچه‌مون ما دهزار از کوچیکه نه بزات نه گناه داره نه خرید بلده نه رفت و آمد و نه تعامل با مردم هیچی بلد نیست با پدر نه رفته نه اومده رسول الله اصلا ده ساله بود تاجر بود ما بچه‌مون رو کوچیک کردیم ما بچه‌مون تو سری زدیم شخصیتش رو پایین آوردیم تو جامعه نه جلوی مهمون میاد نه سلام علیکی و رفت و آمدی نه مراوده‌ای با مردومی داره نه تعاملی داره نمیشه که بچه حق و حقوقی داره در حق ما بعد از سن 25 سالگی که با ام المؤمنین خدیجه رضی الله ازدواج می‌کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم تجارتش رو گو سرش میده چقدر شطور داشته از شطورای خودش رسول الله صلی الله علیه و در حجت الوداع 100 تا شطور قربانی میکنه شطور داشته گوسفند داشته رسول الله صلی الله علیه و مهمون میمون براش میاد چوپان میاد میگه یک گوسفند جدیدی به دنیا آمده میگه سر بزنید یک گوسفند بعد میمونا شرمنده میشن میگه این گوسه نخوره ان لنا غنم و 100 کل ولدت ذبحنا ما كانه ذبحن اخرى و كما قال علیه الصلاه و تا گوسفند دارم یکی جدید به دنیا بیاد یکی رو سر میزنه این اکرامه این مال بی پول که نبودن همیشه از رسول الله اصلا مثلاً لباسی نمیدونم چلخته‌ای داشته نمیدونم مثل صوفی‌ها مثلا یک گوشه و خلبت و کنجی نشسته کی گفته کی بهتون این معلومات اشتباه رو رسونده اگر رسول الله نداش چون میداد مالی که بهش میومد اینجا مهمون اومده یک گُسپند داره براش رو سر میزنه کرم داشت خصوصا در رمضان دستش انگار باز کرده و باد داره میبره از بس که اهل خیر بوده و اهل بخشش بوده از مالش میداد تا اونجایی که دیگه الله در بهش میگه ولا تبسو تا کل البستی دیگه زیادی بازش نکن که برای خود هم نگه دار بله امون امون میگه آتش سه ماه بلند نمیشه چون میداد خیر میکرد پس ما درست بفهمیم اون واقعیت ها و اون حقیقت ها یک زاویه رو نگیریم یک کنج دین رو نگیریم و قال لفتیان هجعلو بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. کرم دیگه از کرم یوسف از برادرش پول بگیره این در فرهنگ پیامبرا نیست این در فرهنگ کرمش اون نیست این اختیاراتو پادشاه مصر بهش داده بود تو مسئول خزانه داره تو خود مینی چه جوری تصرف کنی تو هم امینی گفت که کالایی که بردن پولی که همراهشونه که اومدن برای معاوضه کردن برای عوض بدل برای تجارت آزوخ بگیرن و پول بدن این پولاشون دوباره بر برمیگردونید قایم بکنه تو اون جو و گندم و عدس خودی که دارم میبرم با خودشون هم میکنن پولشون بهشون برمیگردونید راضی نشد از برادرش پول این کرم نبوت این کرم نبوت از برادرم پول بگیرم خاصم برادره برادر پدریشه این اخلاقه این مرووته الله آدم وقتی که اینا رو میگه دیگه در دنیا اینا پیدا میشن از اون حیا از اون شرب از اون افت و پاک دامنی، از اون ایمان و تقوا اینا واقعا اختیار و انتخاب شده ای الهی هست میذاره در ازاشم به اون اشخاص چی میگه اون اشخاصی که قلفتیانهم اون کارگرایی که بودن زیر دست یوسف کار میکردن میگه که اون کالایی که آوردن اون پولی که آوردن برای خرید بر بربگردونید به آذوقه هاشون اجهلوا بضاعتهم فی رحالهم در راهشون در اون آذوقه هاشون که میخوان بر بربگردن بذارید لعلهم يعرفونها تو اینکه بدونن اینی که مال مال خودشونه، نه که مال دیگری نه مال خودشون به خودشون بربگردونید و اینم شاید سبب بشه قلب قلبو الی اهلهم لعلهم ی جلو شو داد میام سبب بشه کنا بر بگردن یه خوشبینی خاصی اینجا ما از یوسف علیه السلام میبینیم از یه طرف کرمیشه از یه طرفم امیدواریشه نسبت برادرانش یک حسن زنی به برادراش داره یوسف علیه السلام میدونسه کنا حرام خوری نمیکنن بچهای پیامبری بنو اسرائیل که گفته میشه یعنی فرزندان اسرائیل اسرائیل عقوبه یعقوب باز هم که مرگ ما اسرائیل ماقبسا یعنی ماقوار یعقوب علیه السلام اشتباس اسرائیل پیغمبر الهیه و الهیه یعقوب علی السلام اسرائیل بر دولت اسرائیل میگه دولت یهود کاری به اسرائیل نداشته باش اسرائیل پیغمبر خداست اسرائیل پیغمبر الهیه بنی اسرائیل فرزندان یعقوب علی السلام بعضی میگم لعنت خدا بر بنی اسرائیل با جان موسی هارون عیسی اینا همه از نسل پیغمبر یعقوبن یوسف از نسل پیانبر یعقوب خلق خدا همه جا خوب بد توش است نه برای اسرائیل نگاه کنید چقدر پستن الگو بگیرید اینها همه بد بودن فلان بودن خوب بد همه جا هست در کدام امتا خوب بد نبوده هر جای خوب بد الله یک اخلاقای بدی را فقط از اونها از بعضی از اونها نه از همه شو. از بعضی از اونها چون اینها فرزندان انتخاب شدگان الله بودن ابراهیم بعد اسحاق بعد یعقوب بعد الان یوسف اینها فرزندان اون پیانبر ابراهیمند الله اشتباه اونها را بد میبینه بختره همین جو گوجزت میکنه ناگویند اینها انتخاب شده بودن این کارا رو کردن الگو بگیرید ما بر ما فرق نمیکنه به اسرائیل و غیر به اسرائیل ابراهیم خلیل الرحمن در بالاترین شأن محبت نزد الله قرار داره ولی که با این وجود ما چشپوشی از اشتباه نمیکنی همون تا که ما در شریعت خودمون در قرآن رسول الله صلی الله علیه و میکنه در چهره یک نابینا ی ابس و تولنجا و اما این نیکویشه چرا چهره در هم کشی در مقابل یک نابینا بحث میکرد با مشرکین عبدالله بن ام اومد رسول اخمی کشی الله میگه حق نداری اخ بکشی تو چهره مومن الله چی میخواد بگه به ما میخواد بگه ما یک اخب را از پیغمبرمون در مقابل یک نابینا که ندید نمیپذیریم یعنی باید نهایت اخلاق رو داشته باشد خب الله اینجا هم همین درس رو ما میده اشتباه اشتباس ما برای ما فرق نداره فرزند پیغمبر باشن یا غیر پیغمبر داره به ما درس میده عبرت میده پس یوسف علیه السلام فهمید که برادرانش حرامخوار نیستن حرامخوری نمی کردن با وجود که را انداختن تو چاه ولی خوشبینه حسنزن بهشون به کار میبره میگه بذارید آنها ببینن دوباره برمیگردند چون میدونن که چی این مال مال اونها نیست مال و فروختن این پولها رو دادن در عوض کالا و اینها دیگهان این مالی کلام بهشون برگردنده شده مال مردمه باید بهشون بر بگردونن. فا ما را جعو البی هم قالو یا نمونحمل نکییک. اومدن نزه پدرشون گفتن ای پدر دیگر خبری از پیمان نیست از آزوقه و غذا دیگه نیسته. دیگه من شدین چون یوسف علیه السلام بهشون گفت والله تقربون دیگه نزدیک نشین. گفتی دیگه من شدین. فرسل معنا الا بخاطر اگر می‌خوای دوباره بهمون بدن شرط گذاشته اون مسئول خزانه پادشاه مصر. میگه فرسل معنا اخانا برادرمو بفرست تا دوباره آذوقه بهمون بدن. دیگه خبری نیستا پدر برسدی میمیریم فارسل معنا اخانا نکتل برای گرفتن آذوقه اون کیل و پیمانه برادرمو رو بفرست تا رو بگیریم و انا له لحافظم. بابا پدر جون ما هم میدونیم حفظش میکنیم سبحان الله یک زخمی تازه میشه اینجا یک زخمی تازه میشه میگن جای دار میره جای زخم زبان و جای غم و غصه نمیره درد دل پانسمان نمیشه زخم بدن شاید پانسمان بشه هر که پانسمان هم بشه اثر اون زخم میمونه درد یعقوب تازه میشه با این حرف چطور اعتماد بهش بکنه یک بار اعتماد کرد بردنش دیگه برش نگردونه این یکم ببرن دوباره برنگردونن بر سخت زخمش تازه میشه یعقوب علیه السلام بیاد سالیان سال قبل میفته و دوباره دردش تازه میشه زخمش تازه میشه این درس رو اینجا ما میگیریم از اینجا که زخمی که بر دل مینیشینه هر آنی شاید اون زخمه هر زمانی شاید اون زخمه تازه بشه اون زخم پانسمان نمیشه معاذب باشید کسی را با زبانتون نرنجونید والله زخم زبان زخم دشنام زخم بدگویی و بددهنی والله دردش نمیره یک حرفی آدم شنیده یک تعاملی دیده یک برخوردی دیده ده سال شاید 20 سال ازش گذشته ولی یک جایی اون دوباره با یک سببی دوباره اون زخم تازه میشه درسته که حفظ کردی، درسته که کردی، ولی سخته به خاطر همین در خشمتون تصمیم نگیرید. اثر بدی ازتون نذارید. شاید اون طرف مقابل مثل یعقوب رنج دیده بشه و این رنجش یک روز دوباره زنده بشه. اون زخم تازه بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نباید انسان از یک سوراخ دو بار گزیده بشه. سوراخ ماری یک بار گزیده شده، خب دوباره دست توش نکو. خب اینجا الان یعقوب علیه السلام چه کار بکنه؟ قحتی به خوشالیه. این برادر یک بار سابقه بدی دارن. پسرش بردن, بر برنگردونن اینم بخوان ببرن برش نگردونن وعده هم دارم میدن چه کار بکنه دراهی گیر کرده یک بار چوبشو خورده یک بار زجرشو چشیده اینو هم باز دوباره بدن تقاضا دارن که به ما اعتماد کن و ما هم امانت داریم ازش کمال رعایت رو خواهیم داشت و کمال حفظمون و حفاظت قال هل امان علیه گفتم زخم تازه شده آیا اینجا به شما اطمینان کنم الا كما امنتكم على أخيه من قبل الان به شما اعتماد کنم همونطور که قبلا در مقابل برادرش یوسف به شما اعتماد کرده همونطور اعتماد کنم دوباره فالله خير حافظ والله الحسنه زنش درسه بدبین به بچاش قرائن ادله ها گمان ها بر اینه که اینها دوباره خیانت کنن اینها چون گفتن مارگزیده از ریسمان سیاسفید سفید میترسه یه بار گزیده شده این میترسه از یه طرفی هم خب قهطی خوشسالی میمیرن حالا یعقوب سر دراهی گیر کرده بچه شو بده دوباره یاد نده. اعتماد ببکنه بهشون نده ولی که این جنبه حسن زن به الله بر اون دید بدی که داشته نسبت فرزندان که حق داره هم دیدش بد باشه زن و گمان همیشه بدیسه بد ظن گمان مثلا بفرض یک شخصی مواظه به خودش باشه تو یک جمعی که شاید یکی کسی براش پاپوشی در نظر درست میکنه باید مواظه به خودش باشه زن شروع یکی فکر... یک کسی به چون قرائن دلالت میده چون دیده از این شخصی یه جای یکی کسی برای کسی دردسر ساخته خب اینجا قرائن رو باید در نظر بگیره ولی که نه تعمیمش بده بدون قرائن قوی به چون ادله و براهین قوی حق نداره دیدش به کسی بد باشه باید جنبه حسن ظن به الله کافی این باید سنگین تر باشه فالله خیرون حافظ الله بهترین حفظ کنندگانه بهترین حمایت کنندگانه بهترین کسی که از ما نگهداری میکنه دیرش در نهایت حسن زنه به الله احفظ الله ای اگر این دین داره الله را حفظ کرده الله حفظش میکنه یوسف هم در حفظ الهیه میدونه و یقین داره این حسن زنه و ایمان این پیغمبر الله به الله و هو ارحم الراحمین بیشکم الله مهری که نسبت بندگانش داره با هیچ کسی قابل قیاس نیست بلکه الله بهترین بهترین مهرورزانه و هیچ مخلوقی در مهرورزی به پای الله جل جلالهو نمیرسه الله درهای رحمتش را بر ما نیبنده مالا مشمول رحمت خودش قرار میده از الله متعال خواهیم هم ما را حفظ بکنیم هم فرزندانمون هم اهلمون بار الله حفظشون کن و صلی اللہ علی محمد و علی, علی محمد